سلام عرض می کنم با احترام و عرض فروتنی خدمت شما پنجشنبه و رسیده و در منظر استاد علامه حکیم دانشمند دینا با زیایی هستیم که قیرامون طب سنتی و اسلامی طب صادق علیه همه السلام طب علیه السلام برای ما و شما بینندگان بزرگوار صحبت و گفتگو می و از خواست داروهای گیاهی می گن بیش از هشت هزار پیامک به دستمون رسیده و سوالات متعدد و البته مشابهی هم مطرح شده. برخی از این سوالات در جلسات گذشته توسط استاد پاسخ داده شده و شاید تعدادی از بینندگانمون که موفق نشودن این بخش رو ببینن مجدداً سوالاتشون رو مطرح کردن. خب باز شاید باید از بخوریم که عزیزانی که علاقمند هستن مباحثی رو که در هفته های گذشته طرح شده و پرسش هایی که مطرح شده و استاد پاسخ گفتند رو بتوانند دریافت بکنند میتونند این گفتگوها رو روی سایت صدا و سیمای خراسان رضوی اونجا گذاشته شده و دانلود بکنند اینم خبری بود که دوستان و همکارانم اطلاع دادن و انشالله که مواحص ایشون برای شفا و تندرستی و سلامتی و بهروزی شما حتما واسل هست که ان شاء باشه از ادب و احترام دوباره دارم خدمتتون وعلیکم السلام و رحمت الله به شما بزرگوار اعمه دست اندرکاران کاران است سیما از ملت شریف مخصوصا خراسان یی عزیز که حرفای ما رو چند دقیقه گوش میکنه. خیلی ممنونید خب ما هم هر هفته مثل پیرنده مشتاق هستیم که از جالی رو زیارت کنیم و از راهنمای های آلمانی شما استفاده کنیم یکی از موضوعاتی که شاید بسیار مورد پیگیری عزیزان بیننده هست بحث ناباربریست اصدا دارم توضیحاتی راجع به این مهم بفرمید که بینندگان مستقمون بتوانند اون داروهای گیاهی یا اصول و رستاری رو که میباید به کار ببندن انشالله برای یک فرجام خوب به دست دستگیارد بسم الله الرحمن الرحیم در روایات شیعه رسالشی جلد 14 چاپ اسلامی تهران روایاتی آورده از امام صادق علیه السلام از بقیه معصومین که از اون روایات به دست میاد که انسان تو جامعه رشد میکنه و مستحب مؤکد که تشکیل خانواده بده چه پسر چه دختری که هم بلوغ جنسی دارد هم بلوغ فکری دارد شرایط ازدواج قانونی و شرعی هم فراهم مستحب معکده و اگر به گناه میفتن برشون واجبه که ازدواج شرعی و قانونی کن مطلب بعدی اینه که اکثر و اهل نار الازباؤه کسانی که شرایط ازدواج قانونی شرعی دارن، اما عمدن ازدواج نکنم، به باهانهای واهی تأخیر بندازن ازدواج سعیشون رو، اینجا جهنمی میشن و اکثر افرادی که در جهنم هستن، کسانیان که عذب، یعنی ازدواج نکردند. مطلب سوم قرآن اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیح پس داشتن فرزند صالح با تربیت روشیات رشد مناسب و مانند اینا از حیث جسم و ووان و روح و نور همه چی ایدئال باشه اینم جزبه اهدافیه که اسلام در قرد ازدواج قانونی شرعی بیان کرد حالا شخصی ازدواج قانونی و شرعی کرده بعد به علالی دوچار ناباروریه حالا علل ناباروری که در سالهای اخیر در کشور جمهوری اسلامی ایران زریبش زیاد شده و در آقایان هم بیشتر از بانوانه در زن و مرد گاهی علل ناباروری خوردن بعضی چیزها یا در پرتو قرار گفتن بعضی چیزها است که نازایی میاره مثل خوردن کافور پسر یا دختری که بالغن یا مهزن یا زن و شوهر، این عقیمی میاره. دوم خوردن شیر خشک اینم عقیمی میاره در سنین ممیز و بالغ بودن. سوم خوردن نخط فرنگی که حالا مد شده، همراه سالادها یا گوشت چرخ کرده مردم میخورن. و حال اینکه در هندوستان و کشور چین از نخط فرنگی، هرمون اقیمی میگیرن اونا سرگیز جمعیت دارن انفجار جمعیت دارن ما که جمعیتی نداریم اینم در کتاب معارف گیاهی دو و جلد 6 و جلد دوش دکتر حسین میرحیدر با سند مطالبی رو عرض میکنه کتابش هشت جلد چهارم این چیزی که عقیمی و ناباروری در زن و مرد میره خوردن میوه قاضیاغیه که در آذربایجان غربی و شرقی و در ایل بختیاری و بایار احمد اونها میگن برگ بو برگهاش به درد درمان پیسی میخوره اما میوهش عقیمی میاره نباید بخورن پنجم در معرض پرتوهای اتمی قرار گرفتن راڈیوم، ارانیوم اتاقای اکس و مانند او اینها هم اقینی میاره نباید زیاد اونجا جوایسان که چه سل خونی هم میاره و باید تو جیره غذایی شیر اصل باشه یک بار دیگه نه ناباروری بحث نیست بحث سر اینه که نطفه زن و مرد ضعیف میشه چه چیزهایی نطفه زن و مرد رو ضعیف می‌کنه اینها رو هم باید ترک کنه اول قندهای شیمیایی قند و شکر و شینجات قنادی‌ها دوم اوسانس های شیمیائیه. که 79 اوسانس داریم 20 تا بیماری میاره یکیش نطفه زن ضعیف میشه سوم ترانس چربی بالاست خامه سرشیر که خامه رولت نارنجکی تعدیق این مسئله چهارم کافین زیاده چای پرونگ یا نیمه پرونگ چای با اوسانس قهوه شکلات کاکاون اسکافه اینا نطفه را میکنه چون صفراوی و همچنین کمخونی به نوع فقر آهن میاره و تبرون لوزه های جانبی میاره. خدا تو مباعث ما نطفه رو هم ضعیف میکنه. انواع کنسرو ها، انواع کمپوت ها، اینا نطفه رو ضعیف میکنه. پرخوری و کمتحرکی، علاوه بر اضافه وز و بیماری دیگه مثل درد مفاصل رسول پروتئین در مفاصل و مانند اونها، خودش یکی از علل ایجاد نطفه ضعیف در زن و مرده. هشتون قضای منده بیماری های مختلف میاره طول هم انسان کتا هم میکنه. نطفه زن و ضعیف هم زعیف میکنه. نهان فست فوده ها مثل سوسیز، کالباس، همبرگر اینایی که مد شده. بیماری های مختلف میاره یکی شمچه نطفه زن و مرده زعیف میکنه. دهان استرس شدید مگرانی مستمر به نوع شدید چند بیماری میاره یک نطفه زن و رو ضعیف می‌کنه. یعنی طول عمر تخمک و طول عمر اسپرم کوتاه میشه و ضریب لقاح ضعیف میشه پس علل ایجاد ناباروری، علل ایجاد نطفه ضعیف در زن و مرد توضیح دادی. اما در زنان علل ایجاد ناباروری چیزای دیگه هم هست مثلا اگر خانمی کیست تختان داشته باشه یا هر دو تختانش یا یک تختانش دارای چند کیست باشه اصلاح امروزی ها پی سی او یا تختان پولیکیستیک باشه. این خودش یکی از علل نازایی. دوم سوم فیبرام بحث فیبرام های رحمی فیبرید ها وقتی جدار زخامت پیدا میکنه از یک ذریب نورمال به بالا خود این یکی از علل نازایه و ناباربری چهارم چسبندگی لوله رحم پنجم ناراحتی دهانه رحم ششم سرطان دهانه رحم هفتم سرطان رحم هشتم قرص ضد حاملگی نهم بستن دوله های رحم که مد شده کپی رایت کورکورانه از غربو شرق میکنن خب زن شوهری که ازدواج قانونی شرعی کردن وقتی که اولاد میخوان حرکت برکت باشه وقتی که نمیخوان حرکت تنها باشه لازم نیست که زن و خودشون رو ناقص کنن هیچ کدامشون اثر ندارن تا کی اولادشون زنده است شاید زلزله بشه شاید طوفان بشه شاید بمبارون بشه شاید یه بیماری پیش برد و اولاد از بره وقتی که زن و شوهر خوهشون ناقص میکنن شوهر لوله دفران یا زن لوله را میبنده می از هر صد نفر اگه سه نفر باسید دوباره بتونن ایجاد بارداری کنن درصدش خیلی پایینه پس زن و شوهر خوهشون ناقص نکنن پس اینکه برخی از آقایون وازکتومه میکنن این امکان برگشت نداره بسیار کمه خیلی از صد نفر سه نفر اسلام هیچ کنترول داریم تنظیم خانواده داریم اما اینکه که زن خودشون ناقص کنن یا امره به تشویق کنن که دیگران خودشون ناقص کنن بسیار کار بدیه این کپیرایت کورکورانه از قرب و شرده. مطلب دهم اگر خانم باشه کاهش هرمون های جنسی زنانش از ایسه استراجن پروجستران و اگر مرد باشه کاهش شدید هورمون مردانه تستسترانش اینا هم یکی از علل عقیمی در زن و مرد حالا در زن هم که بحث پروژستران توضیح داد کسانی که خستگی جنسی شدید دارن چه زن چه حالا فعلا در زن خود همین هم یکی از علل ناباردریه خانمی که تختان کمکار داره خانمی که طول عمره تخمکش کوتاهه، کوتاهه. زود تبدیل به جسم زرد یا اول میشه خانمی که تخمک ناراست داره، تخمکهاش کامل نمیشه، رسیده نمیشه. خانمی که افونتهای مجاری ادراری دستگاه تناسلی داره. خانمی که سرطان تخدان داره. و چند تا نقطه دیگه اینا تو بحث تخصیصی بیماری های زنان از علل ایجاد ناباروری در زنان. حالا درمان تخدان ضعیف، درمان تخمک ضعیف. درمان طول عمر کوتاه تخمک و درمان کیست تخمدان یک هر روز هفت برگ کاسنی را با یک قاشق مرباخوری پودر کاسنی یا یک استکان عرق کاسنی بدون اسانس مصرف کن چند فایده داره زد سحر زد المام زد وسواس فکریه و همچنین تقویت کننده تخمدان زن از کمکاری کاری تخمک رسیدش بیشتر میشه طول آمر تخمک هم بیشتر میشه این دو منظور عمل میشه در مردان هم توضیح میکسه دوم مخلوط پودر ریشه گیاه سعلب با زعفران به اضافه مشک نافع آهو سعلبی که در بستنی میریزن اینا تقلبیه شیمیایی با از معذار از بستنی پروشی اینا تقلبی آجاز شیمیایی. ها سعددی که از ریشه ای گیاه سعدده که گونام هست یک قاشق چایخوری پودر این به اضافه زعفران به اضافه مشک نافع آهو به مقدار اینا رو با هم پودر میکنن مخلوط میکنن به مقدار یک نخود یک نیم ساعت، یک ساعت قبل از سمریه که خصوصیش اون حضرت خانم با خودش برمی میداره تو بحث محبلی یا واژن و مانندو سوم باقلای هندی ساییده شده رو که با شیر انسانی مخلوط شده قبل از عمله که خوسی با خودش در اگر کسی ساییده شده‌ی آبنوس رو مثلا خانومی که چندین سال عقیمه اگر ساییده شده‌ی براده‌ی چوب آبنوس بعد از پاک شدن از عادت ماهیانه و حیزش به مدت هفت روز به مقدار یک مسقال تقریبا میشه یک قاشق چای خوری با آب و اصل بخوره و بعد از آن سلام علیک که خصوصی باشه ورش داشته باشه حامله میشه مطلب چهارم کاهو همیشه همراه نهار و شام بخوره اما بدون سس چون خود کاهو قاعد آوره کسانی که خون حیز نمیشن یا خیلی کم میشن دارچین، زعفران، کاغو اینا همه قاعده آوره تختان فعال، جدا و فعال پنجم کرفس همراه با یه ساقه شیشام گل استخد دوست اون کسانی که از خانوما کیست دارن صبحا یه قاشه چای خوری در یک لیوان آجوشه بله تو بحثای داروهای شیمیایی که متخصصین بیماری زنان میدن قرص شیمیایی کلومیفن. کلومیفن زیر نظر متخصص بیماری های زنان دوزش معیین میشه مطلب هشتون اگر خانومی چاقه مثلا 20 کیلو اضافه وزن داره همچنین دیابت هم داره حالا چه دیابت از قبل داره چه دیابت هنگام حاملگی داره اینجا باز با تجویز متخصص بیماری های زم... زنان برس شیمیایی متفورمین تجویز میشه حتی در مراکز نازایی بعضی از متخصص سینما مثل دکتر اصفهانی در اصفهان باز اینم با دوز خاصی تیچه که هم کنن تجویز میکنن برس متفورمین مطلب نهم خانم هایی که ناباروری دارن هر ماه در دوران قاعدگیشون مربای میوه امله مربای میوه امله هر روز بخوره به مقدار یه قاشق مرب بخوریم درمان نابالوری در زنان توصیه دارم اگر بیماری های زمینه خاصی خواستیم باشم خیلی به بحث مردان هم مطالبی هم. بله خب اون موضوعاتی که مربوط به بانوان بود رو حاجه آقا فرمودند مبحث در ورود مبحث مردم رو اجزه بیدید خیلی زود برگردیم حسن. خدمت از این هستیم درود شما خیلی متشکرم. ادامه گفتگو رو در محظر استاد حکیم و جناب آج آقای زیایی هستیم گیاه داروهایی رو که برای رفع ناباروری در خصوص بانوان اشاره کردن روشنیدیم اما راجب آقایون اگر ممکنه خواهش کنم فهرست استوار بفرمیم چش علم ناباروری در مردان یک بار واریکوسل که تبرم وریدهای بیزه است یک بار هیدروسل که تجمع مایه اضافی بین بیزه و پوست بیزه یک بار افونتهای مجاری ادراری و دستگاه تناسلی و حتی افونت مننجیت که در پشت پرده مننج در مغز. حتی بیماری اوریون اگر پسری در سن ممیزی و بلوغ بگیره اینا یکی از علل ناباروری در مردانه مطلب چهارم ضربه تصادف سقوط که به پایین تنه این ضربه وارد این اینا یکی از علل ناباروری در مردانه رانندگی های طولانی 6 7 ساعت 8 ساعت پشت سرم با اینکه از نظر تخصصی طب کار هر 2 ساعت واخه به ساعت 20 دقیقه استراحت کنه شیشوم جراحی اول جووان محترم یا بدن بیمار مثلا به خاطر شرایط خاصی سبب میشه که دو چاره عقیمی بشن هفتم موبایل ها یا تلفن های همراه که تماس های طولانی 15 تا بیست ثقی باش میگیرن هشتم مصرف داروهای هموتراپی اینها هم یکی از عوامل ایجاد عقیمی در مردانه نهم استفاده از حمام های سونا تا بخار خشک و مرتوب یا جکوزی استخر آب تگری اینا رو که همزمان هااج انجام میدن اینا هم یکی از علل ناباروری در مردان لباس های تنگ شلوار های تنگ شلوبارک های تنگ شرت های تنگ کللا لباس های تنگ و چسبانه به بدن عل بر ایجاد نارتی های قلبی یکی از علل ایجاد ناباروری در مردان و پسران یازده هم اگر بعد از بچه پسر که به دنیا اومد تا یه سنی باید نزول بیزه در کیسه بیزه بشه حال اگر مادر پدر ترجه نکنن که که بچه رو عوض میکنن و نزول بیزه بچه پسر تو کیسه بیزه نشه و این بیاد به سن ممیزی و بلوغ این یکی از علال نابالوری در مردان و پسران عدم نزول بیزه از شکم به داخل کیسه بیزه دوازده هم اگر مرد یا پسری رازیانه مم. یا سبزی گشنیز زیاد بخوره عقیمی میاره در پسران و مردان شون کاهش وضعیت نیروی جنسی و کاهش اسپرم در مرد میشه کسانی که زیاد کار میکنن با اینترنت و استراحت در بین کارشون ندارن خود همین یکی از علل ناباربری در مردانه حالا درمانهاش اگر بیزه مردی که ازدواج قانونی شرعی کرده بیزه کوچیکه، هر روز یه قاشق چایخوری پودر شکوفه درخت خورما رو بخوره، بیزه بزرگ میشه. گرچه از حیث فیزیولوژی بیزه چپ کوچکتر از بیزه راسته. دوم، کمبود اسپرم سالم. بخوایم درمانش کنیم. تخم مرغ با پیاز سفید و روغن زیتون به قول شیرازی ها خاگینه درست کنه. و یک روز در میان در هفته بخورم تعداد اسپرم های شوهر زیاد میشه و ذریع به لقاه ایگرگ شوهر به ایکس زن زیاد میشه و تعداد بچه پسرهای شوهر زیاد این روایت از امام صادق علیه السلام در بهار علامه مجلسی جلد شست مطلب سوم اگر ضعف اسپرم شوهر در هنگام لقاه داشته باشه یا زعف جهش اسپرم داشته باشه یا بیزه کم کار می در هر سه مورد عرب کاسنی بدون اسانس یا پودر کاسنی یک قشو مرب بخوری یا هفت برگ کاسنی در 24 ساعت بخوری درمان هر سه می شود مطلب چهارم اگر شوهری استرماش صفر، ولی یعنی اصل اسباب اساسیش سالمه واحدش آتبنده کارخونه سالم انا, انا افتتاح نشد. حالا افتتاح کارخونه پایین تنش به چیه؟ اینجا سعلب، پودر سعلب طبیعی یک قاشق چایخوری در نیم کیلو روغن زیتون هم بزنه از این مخلوط شوهری که اسپرم صفه روز یک قاشق بخوری بخوره هر ماه بیستا تا ها جوان اسپرم اسپرما چی میشه؟ زیاد میشه هر وقت به میلیون رسید اینجا قدرت ایجاد باروری داره حالا اوسته یه تقویت اینها مسائلی هست که اینجا دیگه نمیشه مطرح کرد اما تومورهایی که سوال کردن حاجه تو بحث تومورهای خوشخیم انواع کیستا تختان پولیکیستیک تو بعضی موارد تومورهای بدخ... بدخیم همچنین تجمع مایه اضافی بافتی. اجازه می فرمید؟ خواهش میکنم پس این موضوع رو چون دامنه دار هست؟ مخلی کنیم به هفته آینده من درداغه دارم چون پرسش های بینندگان عزیزمون پیش رویمون باقی مونده با کسب به اجازه محضرتون خب بیننده محترمی تماس گرفتن که از حواست پنجگانه حس بویایی ندارن ولی تقویت حس بویاییشون چی کار باید بکنن؟ یک سری چیزا هست که حس بویایی در انسان رو ضعیف میکن یک گرد و خاک زیاد دوم خاک گچ سیمان سیمان سفید یکی هم خاک گچ که با اون گچ ها فرم اینها حس بویایی در انسان ضعیف کنه حتما باید ماسک داشته باشه یا چفیهی که معتوب باشه گایی هم بخارات مسمونه که حس بویایی زعیف میکن مثل اسیتون آمونیاک آرسنیک آب جوال وایتکس تیزاب اینا خیلی ها داره یکیش حس بویایی ضعیف پس حتما از ماسک استفاده کنن در این بخارات مصبوب این بعضی بیماری های آفونی خاص حتما از ماسک دو جداره استفاده کن برای تقویت حس بویایی روغن به نفشی طبی روزی دو قطره تو هر سوراخ بینی به چه نگه سبب تقویت حس بویایی در این افرادش پس روغن و نفسی طبی رو روزی دو قطع در بینی کنن نگه دارن برای تقویت حس بویایی عمدن میگم تبی به خاطر که گلیسرین، پارافین، وازلین قاتیش نکنن بسیار اما بیننده محترمی مطرح کردن که نفس تنگی شدید دارن که حالات خفگی بهشون دست میده و باعث میشه که درد شدید در پهلوها و قفسه سینه به وجود بیاد زمینن گفتن اضافه وزنم دارم برای رفع نفس تنگی چه دارویی مفید است؟ جوشانده خوردانه یا دم کرده خوردانه که بیرجندی و قایمی ها میگن اچقو اینجا در نفس تنگی درمانش بسیار مفیده یکی هم جوشانده برگ بارهنگ یا مصرف عرق بارهنگ به نوع طبیعی بدون اوسانس بسیار مفیده از پیرامون واریز که خیلی صحبت کردیم. آینده. نمیشتن چون باعث خون مردگی در پشت ازولات و مایچه های پاها شده و لختگی خون اینا رخ... میتونن یک قاشق مرب بخوری آبلی موتورش تازه بخورن بعد پنبه رو آقشته کنن با آبلی موتورش تازه روی رگهای برجسته واریس ماساژ بدن عالی بار سنگین بر ندارن بعد پاشون رو پا نندازن بعد از جراب واریس استفاده کنن فقط وقت خواب در بیانن با. خب سردرد های شدید که دارن مربوط به سینوزیت نوشته درد دو طرف سر و پیشانی طوری که دو هفته است به صورت مداوم دردشون کاهش پیدا نکرده اینجا که از قسمت بین دو ابرو دو طرف تیغه بینی درد شروع میشه تا گیجگاه ها های سینوزیت حالا التهابی یا افونی التهابی باشه قبل هر وضوح با آب ولن بینیشونو بشورن اگر افونی باشه سرم نمکی از داروخونه خونه بخرن گرد پینسلین 800 هزار مخلوط در سرم نمکی کنن قبل هر وضوح بینیشونو بشورن افونت های های فوقانی و فکی خوب میشه نیازی به محصف آموکسیسلین یا آموکسیکلاو یا سیفالکسین نداره. بلی باید از خودشون موازبت کنن هد بند یا پیشانی بند یا چپی ببندن، پشت پنجره در نخوابن تو چرخ موتور سوا نشن شیشه ماشین پایین نباشن رو جریان سرد پنکه کلر کلرگازی واقع نباشن این رو باید مواثبتیشانشونی گرمیگرد برای رفع حساسیت های فصلی مخصوصا تو بهار اینجا حتما از دستمال مرتوب نخی چلوی بینی درن نگه دارن چون این هاگ گل ها پخش حساسیت فصلی، عشقیزی های بی موردشون آبریزش های بینیشون زیاد میشه سرفه هاشون زیاد میشه چشماشون قرنز میشه همینو رعایت کنن اکثرا خوب میشن به همین مطلب میتونن از بخور اکالیپتوس اینها هم شب قبل از خواب استفاده کن من سوال کردن از نظر طب اسلامی آیا درمان لوزه وجود دارد یا خیر بله بعده. چه چیزی سبب کاهش تورم لوزه میشه قربون امام رضا روفند حضرت میفرماید چقدر معصوم ها ما رو دوست داره و ما غافلی و اعضای ما رو هم احترام میذاره برای حفظش مثلا امام رضا روف میفرماید اگر میخواهید دندونات خراب نشه و همچنین لوزات و دو گوش حلقت افتادگی و تورم پیدا نکنه قبل از شیرینی خوردن چه طبیعی چه غیر طبیعی. قبل از شیرینی خوردن یه تکه نان خشک به بخور بعد شیرینی بخور. بعد میخوای شیرینی بخوری. قبل از شیرینی خوردن و بعد از شیرینی خوردن با محلول آبسرکه طبیعی قرغره کن. تا لحات دوگوش حلقت افتادگی پیدا نکنه و توروم لوزه و صرفهای خلطی نگیری. ولی مردم حالا حواسشون نیست امانوزه علیه علی سلام دارن حواسشون نیست ده. ده. که به فرمایش آقا عمل کنن حالا یه تذکری دادم دیگه متشکرم از محبت خیلی مطلب است ها جما درخواست کردن یه توضیح به که برای افزایش توان جنسیشون چه گیاه داروی مفید هست اینجا زن و مرد فرق میکنن زن و مردی که ازدواج کردن با هم فرق در حضرت خانمایی که ازدواج کردن هر روز چای رازیانه از یک استکان تاست استکان دم کرده شو بخواد. اما در مردی که ازدواج قانونی یا شرعی کرده دم کرده زیره سیاه دم کرده زیره سیاه استطلاح قدبی یا زیره کرمانی پس هر کدام خستگی جنسی در زنان دم کرده رازیانه، درمان خستگی جنسی در مردان دم کرده زیره کرمانی توی یه جلسه هم فکر کنم فرمودید نخود و کشمش هم مفیده بله بله اون برای اینکه که کمر لقیشون خوب بشه برد. یعنی زود از مدار بیرون نره و واحد تریپ نکنه برد. به صدای متخصصین برق بسیار اما پرسیدن که برای رفع افونتهای ادراری چه داروگیاهی استفاده بشه اینجا بهترین میوه حاجقا انگوره روز یکی دو خوش انگور بخورن یا یک لیوان آب انگور تازه من. هم پیشگیری هم درمان افونت های مجاری ادراری حتی بیماری سوزاک میکنه حبکه این شاندیسایی هایی که در بازار هست و این آبین ها ها ب... که به اسطلاح آمیانه نه. مردم آتشقاله شی... شینی هاییه بین اینه یعنی نه قذر هست نه ریز مقذی اینا مریض کننده مردم و شکن پر کنه و هم از پول خالی میشه. من. مطرح کردم قده تیروهی پرکار شده چه داروگی هره برای برای کمکاریه برای قده پرکاره بخوایم متعادلش کنیم جوشانده گل گابزبون و همچینین گل نسترن جوشانده گل گابزبون و گل نسترن رو استفاده کنن برای درمان سنگریزه کلی و مسانه کودکان که باید کرد من یادم است توی جرسه فرمودید که سیاه‌دانه رو بله میتونن بله آقایون یا خانم ها بزرگسال استفاده بکنن اما برای کودکان برای کودکان حاجا این دوزش کمره مثلا دم کرده یک قاشق چایخوری سیاه‌دونه میزیم تو استکان روش آبجوش میزیم 5 تا 10 دقیقه میکنیم دم میکش آبش رو صاف میکنیم حالا ببینیم بچمون چه سنی سن زیر 6 ماهگیه یک قاشق چایخوری بهش میدیم بالای 6 ماهگیه یک قاشق مرباخوری بالای یه سال یه, یه پلو پلوخوری از این دم کردن که توضیح دادره. دم کرده هسته خرما رو هم فریده بود بله بله جوشانده هسته خورما در خرد کردن سنگ های کلیه و مسانه نقش ویژه داره و به عنوان هل طبیعی در دفع سنگ صففر مفید. اون باز یک جلسه رو باید بیارم ها جا قشنگ حال سنگ های مانه سنگ های صف و اینا رو متشکرم. نویشتم خانمی چل ساله هستم قلزت خون دارم راه درمانشو بفرمیم اینجا تو جیره قضایشون به جای داروهای شیمیایی آسپرین آس وارفارین هپارین و چیزهای دیگه که جدید اومده میتونن آب و آشامیدنی سالم آب جوش ولم میوه تمشک زرشک خام آلو و خاراب. اگر ریواس داره و اگه اگه فشال خون داره و قرزت خون ریواس اگر خون آلوده داره و قرزت خون اناب اینا که توضیح دادن هم رقیق کننده‌ی خون خیلی ممنونم برای رفع بوی بد دهان و بوی تعریق بدن گفتن که خاطرم هست شما خیلی اشاره کردین در چند وهله که بوی بد دهان دلایل متعددی داره و رفع بوی تحریق بدن هم که فرمودی گلاب استفاده بشه گلاب، قدر گل محمدی, محمدی, محمدی اخوانا علل مختلفه هر کدوم از اون علال رو حس کنیم اون علت بدبویی دهان از بین میره مثلا یکی از علل بدبویی دهان خون روش لسه است بعضی ها لسه نارسایی داره بعضی ها دندان نیم نهفته یه عقل زیر لسه داره خب اینجا باید پیشین متخصص دندان و لثه برن درمان کنم نزیر قلیزت خون ها باید پیشین متخصص بیماریایی خون برن قلیزت خونشون درمان کنم چون گایی اورژانسیه و داروهای گیاهی زمانبره و گایی شخص اورژانسیه، مثلا آنان آن سکته کرده خب حتما این توی دوز دارویش دکتر محترم آسترین یا وارفارین میذاره اشکال نداره حالتهای اورژانسی یک هفته تا دو هفته هیچ اشکال ندارم مچکر دارو گیاهی جواب نمیده ما در شرایط عادی میگیم و در طول زمان که اثر بخشی داروهایی گیاهی ده. مشمول فوریت های پزشکی نمیشه آفرین مچکرم دیننده هم فرمودن که دندونشون پر شده ولی آفسه کرده آیا چون پر شده این آفسه رو میشه با گیاه دارو رفعش بله. مثل چی؟ مثل پیاره سیب زمینه مثل پیاره سیب اینجا آبسه دندون باید بینیم آیا این دندونش قبلا افونت داشت یا نه و از داروی ضد افونتی که دکتر تجویز کرد آیا استفاده کرد یا نه چون بعضی ها دندونشون رو تعمیر میکنن یا میکشن صبر سبر نمیکنن. بله خون نباید بخورن خون خوردن حرامه باید خون دندان و رو بیرون بریزن اما بعضی رو سر نمی کنن. میرن زود دهنشونو آب میکشن تو دهانشون هم آب می گردنن. این اشتباهه باید دو ساعت بگذره و عوامل انعقادی خون اون زخم ایجاد شده رو ترمیم کنه که آب و نفوذ نفوز در نسوج لسه نکنه خواستم بگم باز باید به یه متخصص لسه یا دندان مراجعه کنن این شبه خب ادامه پرسیش ها رو هم محضر استاد هستیم تو این فاصله من رخصت میخوام که عرض بکنم مخاطبین عرض به گرامی بینندگان محترممون میتونن برای استفاده از بیانات مهمان گرانسنگمون به آدرس اینترنتی www.irib.ir که در واقع آدرس اینترنتی صدا و سیمای خراسان رضوی است در بخش تولیدات ویجی مراجعه بکنن و فرمایشات مهمان عزیزمون اونجا میتونن دانلود بکنن و استفاده بکنن از همکار کارن عزیزمون هم در طرش صدا دارم که اگر امکان داره این آدرس اینترنتی شبکه رو بله زیرنویس میشه ممنونم حاجی حتی یک داروی عمومی هست برای درمان داروی عمومی بله. تو همه سنه برای درمان خونورش لثه، تورم لثه افتادگی لسته آبسه دندان پیله دندان و کیست دندان که زیر ریشه است. و اون داروی عمومی چیه؟ همین سرکه طبیعیه سرکه طبیعیه یا سیب یا انگور ازگری اینه تو دهن میگردونن قرغره میکنن میزن بیرون آفت دهان در گرمزاجان مزاجان هم خوب میشه در گرم مزاجان و سر مزاجان صد درمان تبوم لوزهای جانبی لوزه سوم و اخراج و بیرون کشیدن عفونت های لوزه جانبی بسیار مفید پس یک داروی عمومی هست و اینا باید بریزن بیرون قرصش نباید بدن بله مز مزه و قرغره کردن با محلول ابسرک ابسرک برای تقویت لسته بله به صورت عمومی بله رنگ لست هاشون از قرمز پر رنگ و خون روش لسته این نه در میار میشه رنگش صورتی مات و لسته هاشون محکم به بن ددونو می چسب. انشاالله آقای 48 ساله هستم کلی هم پروتئین درف میکنه جذب میکنه چه نودارگیاهی مفیده و چه پرهیز غذایی باید داشته باشن چبی های با ترانس بالا نخورم پرخوری نکنم؟ خورخوری استرسی نداشته باشن، کم تحرک نباشن، تو جیره غذایی هر روزشون آب، آب برم بدم، در همین انگور باشه. متشکرم. خواستم بفرمایید که گیاهداری برای از بین بردن لک های ناشی از حاملگی رو بفرمایید. اگر در زمان حاملگی حضرت خانم حامله اینجا شکمش رو روزی یک بار با روغن زیتون ماساژ ملایم بده دوچار ترک های شکمی نمیشه با روغن زیتون احسن داره. بعد از حاملگی هم طب نظر پزشک از شکمبند مناسب با بدنشون استفادهش کنن و بعد اونها رو میتونن ماساژ بدن با سرکه طبیعی سیب لکه های قهوهی جدار شکمی و پوست برطرق میشه. از در مجاورت هوا خوش متشکرم. اما شهروند محترمه خانم 76 سالهی گفتن که در مورد بیماری سواتریت یا تنگی کانال مهره های پشت که دو وحله عمل شده انگوشت ها و مفاصلشون هم به شدت درد میکنه چیکار کار کنن خب معمولا درد استخانی و یا های استخوانی در بین بانوان شایع است. داروییایی که بتونه اونا رو تخفیف بده، آلامی ایجاد دردشون رو کم کنه، اما درمان نمیکنه. این تنگی کانال نخاعیش و مانندو باید ببینه آیا جنتیکیه یا آرضی؟ مثلا آیا نشریه دیسک بوده؟ آیا زائده استخوانیه یا ژنتیکاً تنگی داره؟ خب در این موارد فقط جراحی است، با دارو ما دارو نداریم خیلی متشکرم میگویید خدافظی بکنیم اما تسکین آلام باشه درمکرده سیاه دونه و ماساژ با روغن سیاه دونه بله خیلی سپاسگزارم از تشریف فرماییتون مطالب و پرسش ها بیشماره انشالله با هم هفته آینده بتونیم مطرح بکنیم و موارد رو به و نظر شما برسونیم تشکر میکنم التماس دعا دارم ساده از من حکیم جناب حاج ممنونم ببینیم بخش کوتاهی از برنامه رو ببینیم و بعد